جلسه بیس پنج قباد فقه و سیاسم مدنوه سی آموزشالی امام بزا علیه سلام 14 ده هزار و چار گروه فقه و سیاسم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین مسلم الله علیه سیدنا و نبی نابل قاسم محمد و علیه اهل بیت طاهرین المعصومین سیم و الله فی الارضین روحی و روح العالمین الفدا. با کل بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت اطهار علیهم السلام بحث اون رو آغاز می‌کنم. بحثی که داشتیم در بحث اهم و مهم فقه اهم و مهم و بحث تزاهم بود تزاهم رو که در خاطر داریم که با بیست متمایز از تعارض و تعارض مربوط به و ناظر به مقام سبوت به این معنا که دو دلیل نمیتوانند مدلولی رو داشته باشند که در عالم سبوت در واقع تنافی با هم داشته باشند و اگر تنافی داشته باشند و دلیلی مشیر بچون این تنافی باشه، این میشه بحث تعارض. اما تظاهرات مربوط به عالم امتزال برخلاف تعارض که مربوط و ناظر به عالم و مقام سبب و جعله این مربوط به عالم تظاهرات مربوط به عالم امتصاله خب بر این اساس ما مباحث رو کردیم و آمدیم جلو و خیلی از نکات ناظر به بررسی این مقوله بود که ما چگونه تزاهن رو میخواییم حل و فصل کنیم و مباحث مربوطه به تضاهم است در جلسه قبل این از بعد از اون که یک سری ما بحث های کبروی رو مطرح کردیم آمدیم وارد مستاقشناسی شدیم در یک جلسه بحث مستاقشناسی نقلی هم مهم رو بحث کردیم گفتیم طرق مختلفی داره راهاش رو در نظر گرفتیم راه های آمش یک بخشش تحلیل محتوی نصوص بود که خودش سه شعبه داشت تمسک به تصریحات تمسک به زرحورات و تمسک به ملازمات لفظی یه عرفی وادی دوم هم تمسک به ارتکازات بود یا تناسبات حکم و موضوع اینجا یه مقداری ما راه رو باز کردیم برای اینکه از نصوص و نقل استفاده کنیم همینطور تمسک به استدلال های فقهی استدلال های فقهی خب بعضش رنگ و بویه. عقلی میگیرن اونها بارده جزو اون بحث بعدی خواهد حتی اقل استطلال های نیمه عقلی یا استطلال های کاملا نقلی این گزاره های است بود که به ما کمک میکنه ما اهم و مهم رو به سبک نقلی بشناسیم مشابه همین بحث رو و بلکه مقدم از اون رو اشاره کردیم راه های تمسک تفکیه که مهم از غیر مهم رو اشاره کردیم تصریحات رو اگر نبود ظهورات تماسک به ملازمات عرفی تماسک های به استدلال های غیر بیان و چند مرحله و این ها رو مورد اشاره کلی قرار دادیم نفی اهمیت نفی اهم بودن رو هم از این طور رو می توانیم دنبال کنیم بعد در بحث مستقشناسی عقلی مقداری وارد شدیم و اینکه عقل توانمندی محدودی داره روش های عقلی کشف اهمیت رو هم ما بررسی کردیم توسط لوازم عقلی و لوازم خلاصه غیر, لفظ لوازم غیر متنی لوازم احکام خب اینجا مسئله مهم بود یکی از مسائل مهم اینی که ما در اینجا توجه بکنیم که یک چیزی اگر مبغوضیت مطلق داشته باشه وجوب و پرهیز از اون هم مطلق در نتیجه بیانگر در واقع اهم بودن یک موضوع نصی یک حکم نسبت به حکم دیگر خواهد بود خب لوازم دیگر ممکن شما استفاده بکنید خب یک جایی مثلا لوازم شیخ. البته این از گونه در واقع اهمیت فوری خواهد بود می توان اهمیت رو مصادی مختلف برش در نظر بگیریم در واقع من تاخیر خودش این مقاله است که اگر لوازم این رو بخواهیم مثلا از سنخ در واقع اهمیت رو از سنخ وجوب در واقع فوریت بگیری منع تاخیر و در واقع اشاره و جعل عقوبت برای تاخیر خب این ناشه چه معنی هست این که به صورت مطلق اگر ذکر شده باشه تاخیر خلاصه به نحو مطلق اگر ذکر شده باشه معلوم میشه که این اهمیت داره در مقابل اگر یه قیدی بخوره استثنایی بخوره اونجا در اون موارد استثنا معلوم میشه که اونجا اهمیت نداره اگر اهمیت های ابعاد دیگر رو هم در نظر بگیریم خب اینجا وجود داره و ما میتوانیم در واقع این ابعاد اهمیت رو به دست بیاریم و ببینیم چه نوع اهمیتی داره این اهمیت‌های های مختلف از حیث های مختلف میتوانه باشه یک جای شما فوریت دارید خب لوازم فوریت اینی که منع تاخیر بکنه نگیدین این دو با همه خب برال یکی لازمه دیگریه اگر اصلش وجود اصل وجودش اهمیت داشته باشه لوازم وجودی مهمتر بودن چیست اینکه من منع بکنه نسبت به در واقع طرف مقابل منع پرهیز منع ترک به صورت مطلق یه موقع مثلا من میکنم ولی به چه صورت به این صورت که یه قیدی وراش میذاره مگر در صورت فلان مگر در صورت فلان خب اما اگر منع ترک به صورت مطلق باشه یعنی چی؟ یعنی وجودش در واقع اهمیت داره این مختزی چیه؟ مختزی اهم بودن انجامه و ما الان دومال چی هستیم؟ این که ببینیم این, این حکم انجامش آیا اهم از انجام یک تکلیف دیگه است؟ اگر مطلق تاکید یه مقداری مشیر است یک چیز ممکنه تاکید نداشته باشه درسته یک چیزی تحکید داشته باشه تحکید بر انجام یک فعل ما داریم دو مورد رو با هم مقایسه میکنیم یکی تاکید داره تحکید بر وجوب تحکید بر انجام در یک طرف اون ت... طرف دوم اگر تاکید نداشته باشه البته این هم یه شرطی داره یه موقع ممکنه یه تاکید بچه خاصی داشته باشه بعضی تاکیددا ممکنه به خاطر اینکه در شرف ترک اما تاکیید خلاصه موویای اهمیت باشه نه موارد خاص لحاظ بدون لحاظ خاص باشه اگر تاکید یه طرف داره و یک طرف تأکید نداره ما از اون چی میفهمیم یعنی که این طرف مهمتره شما یه جایی ممکنه پیدا بکنید بگید که خب این چون که مثلا در شرف ترک احتمال ترک اون مورد هست خب اونجا ممکنه حسش فرق کنه اما اگه وضعیت عادی باشه تأکید یه طرف داشته باشه یه طرف تأکید نداشته باشه شما چی میفهمید میفهمید اهمیت بیشتر داره خب یه جایی یا مثلا از اون لحاظایی که گفتم ممکنه گویا نباشه گفتم در احتمال تک داشته باشه احتمال مثلا اشتباه حکم باشه مثلا در معرض به اشتب... خاطر اینکه فرض کنیم اهل سنت یه نظر دارن اختلاف اقوال پس نه در زمینه مثلا در واقع سوء تفاهم یا بدفهمی یا خلاصه اشتباه در بیان احکام ممکنه وچه تأکیدش یه مورد اینطوری باشه نه اگر به صورت عادی یه طرف تأکید بشه یه طرف تأکید نشه چی میفهمیم؟ یعنی که این اهمیتش بیشتره خب این لوازم اهم بودنه اگر منو بکنه یا خب من ترک بکنه مختزیه هم بودن انجام اونه نسبت یک مورد دیگه البته اینجا هم تو این مورد هم باید حواسمون باشه برحال هر واجبی اون برش منعه ترک داریم ولی مراد ما اینه که یه جایی برای راه در رو برای فعل میذاره یکی رو راه در رو برش نمیذاره یعنی شرایط خاصیه خب یه جایی مثلا بدل ممکنه براش بیاره در واقع اون مواردی که قبلا عرض کردیم ما از چی میفهمیم یک موردی اهمه اگر یه موردی یه, یه مصداق فقط تک گزینه ای باشه تک گذینه ای بودن یعنی چی؟ بی بدل بودن بدلی براش جل نشده نسبت به خلاصه موارد دارای بدیل خب شما میگی آقا این خودش باید انجام بگیره اما اون طرف چی؟ حالا خودش هم نشد یه چیز دیگه منطقه این بیان تا یه حدی حالا ممکنه شما بگید که آقا اون به مجموعه بدیل ها رو نسبت به این برحساب کن که انه اونا یش... یه مصداق هم خب اون یه بحث دیگه میشه این مستاق نسبت به اون موارد دیگه اگر ببیز به صورت عقلی ما در بیاریم پس در واقع طرق اثبات موارد میتوان متفاوت باشه و ما اگر مساطیق اهم رو پیدا کنیم خب ابعاد دیگه اهمیت رو من از یه لحاظ از یه بعد دیگه برای خدمت دوستان عرض کنم در فضای قبلا اشاره کردیم در فضای فقه موازنات در فضای اهل سنت معیارهای بسیار مختلفی ذکر شده پراکنده است یه مقدار نظمی. برخی محدود تلاش کردن یه نظم بهتری بدن شاید بهترین نظم رو یه آقای داریم به اسم عبدالمجید از سوسهوه معاصر دکتر عبدالمجید از سوسهوه این بندی خدا سعی کرده در هفت رتبه خدمش خب رو ارز کنم بحثش رو منظم کنه الگوی که ایشان برای ترتیب اینها داره اولاً ما سه وادی رو قبلا تفکی کردیم اون چیه یکی تضاهم بین مساله مسلحت با مسلحت بین مفسده با مفسده تضاهم بین سلام علیکم خدمت شو کنم بین مسلحت و مفسده خب اینجا الان در واقع این الگو میخوایی مقداری کمک بکنه ما یه ملاک های پیدا کنیم سلام علیکم سلام علیکم این اولگوی که آقای دکتر عبدالمجید صحبت داره میتونه یک کمک ذهنی بکنه هرچند جای نقد او هم هست خب این ابعادی که ایشان ارائه کردند مبتنی بر این تقسیم بندی سگانه که ما قبلا اشاره کردیم مساله و خدمت شما عرض کنم مصلحت و مصلحت اگر بگیم اینها تداخل کنند این تضاهم مداخل در واقع مصالح با مصالح تضاهم مفاسد با مفاسد این خودش میتونه یک خلاصه معیاری باشه سه دسته اولگوی که میده اولگوی هفرتبه ایست این اولگو رو من حالا شعرش کردم بزرگواران ببینن حالا متن کتاب رو ما معمولا بررسی میکردیم در جلسات مختلف الان نمیدونم چطور شده گشتم پیداش نکردم خدمت شما از کنم تمت کتاب است. چهارچوب کتاب بر این اساسه در میانه الگوی موجود کسی منظم من چند سال دنبال این هستم که این الگو رو یک نظم منطقی بدیم بهش این الگو خدمت شما ارز کنم معمولا بعضی کتاب ها به صورت پراکنده اووردن خب ما اگر بخواهیم این اولگو رو روشن کنیم یه سری مفاهیم باید لحاظ بشه و اونا تبیین بشه تا دوستان بتوانند با شفافیت مناسبی این بحث رو دنبال کنند مکته بسیار مهمی که هست اینه که اون مقوله بحث در بحث فقه فقه مقاصد فقه اولویات و فقه موازنات یک دو سه تا تعبیر ما داریم که اینها به هم نزدیکند خدمت شما ارز کنم این الگو یکی از مفاهیم کلیدیش مفهومه خدمت شما ارز کنم مفهوم سگانه است که به عنوان حاجیات مساله ببخشید ضرور، ضروریات حاجیات و تحسینیات ذکر میشه حاجیات و خدمت شما ارز کنم ضروریات حاجیات و تحسینیات اینها به عنوان رتبه لحاظ میشه رتبه ای که اونجا ما در نظر میتوانیم داشته باشیم اینه که خدمت شما ارز کنم گفته میشه در واقع سه رتبه از مباحث رو ما داریم سه رتبه از مفاهیم اول ضروریاته که خودمون پنج شیش دسته میشه بعضی ها پنج مورد برای ضروریات میشمارن بعضیا ها شش رتبه و بعضی متاخرین بیس و شیش تا بیس و, بیس و افتابه خیلی متکسرش کردن حفظ نفس حفظ عقل حفظ دین حفظ جان حفظ مان بعضی ها ارز گفتن ارز و آبرو بعضیان ها بجاش حفظ نسل گفتن از قدیمیا. ها خوب این رو برای نکته مفهوم رتبه ارز کرده ایم آقای دکتر سوسو و آمده هفت رتبه گفته مثال های زیادی هم داره تا در قلگو شکیل اجمالا اینجا ارز می‌کنم در فضای اهل سنت موارد مختلف داریم خیلی قلگو شکیل ممکن ارائه بدن اما عمق فقهی لزوماً ممکن نداشته باشه یا حتی با میارهای شیعی ما سر سازگاه نداشته باشه رتبه اول برای ترجیح بین مساله، همینطور بین مفاسد و همینطور بین مساله و مفاسد اینه که یکی مصلحتش اعلی حکمن باشه اعلی حکمن یعنی چی؟ یعنی مثل اوجب باشه، واجب باشه خب این نکته که ارز کرد دردم برای این قسمت بود اون که یکی از مسئله اوجب باشه یا در میان دو تا حرام که حالا به بحث بعدی برمیگرده یکی حرمتش معکد باشه یکی حرمکت ساده باشه خب مال اوله پس اگر بین دو حرام واجب و واجب یا به تعبیل دیگه بگیم دو تا مسلحت بود که تزاهمات داشتیم هر کدام که اوکد باشه در بین اگر این هفت رتبه به چه صورته اگر اون رتبه اون معیار و اول حل مسئله کرد خب مسئله تمامه دیگه سراغ دومی سرومی بعدی نمیریم اگر رتبه قبلی معیار قبلی فایده نداشت به چه معناه؟ به این معناه که دو طرف از اون منظر یکی بودن سطح اهمیتشون یکی بود اگر دو واجب بودن از حس حکم یک درجه بودن میریم رتبه اون زابطه بعدی اگر یکی ترجیح داشت دیگه نوبت بعدی ها نمیرسه در این چارچوب این رتبه بندی میگه مرتبه دوم زابطه دوم برای مرتبه دوم اینه که یکی از اونها علل مسلحت هایی ماشه رتبتن. رتبتن یعنی چی؟ یعنی این که مثلا اگر حفظ جان مقدمه یا حفظ مال خب اول ببخشید این ای مال بحث بعدیه ما یک ضروریات داریم یا حاجیات داریم یا تحسینیات احکام رو بر اساس اون مثل سنجی که اهل سنت خیلیشون در نظر میگیرن میگن یه سری از اون احکام ناظر به ضروریاته این رتبهش پس بالاتر از رتبه بعدی که مربوط به حاجیاته حاجیات یعنی چی؟ یعنی یه سری امور دست دوم مثلا برای رفع اصر و حرج و اینهاست. اون احکام ضروری رتبهش مقدمه در رتبه حاجیات رتبه حاجیات نسبت به رتبه تحسینیات بالاتره مثلا یه سری احکام واجب شده یا مستحب شده مربوطه به چیه؟ اینکه خلاصه من مثال ارفی بزنم یه منزلی داریم آپارتمان اگه میخواییم داشته باشیم اونی که بعد این که اپارتمان و ساختمان شکل بگیره دیواراشه پایاهاشه این میشه ضروریاتش دیوارش باید باشه اما اگه در و پنجره نداشته باشه سرما و گرما اذیت میکنه پس این مورده این یه مقدر و حرج میاره خب میگیم آقا در و پنجره میزنیم ولی رنگا میزی در و پنجره چی؟ دیوارش چی؟ این میشه تحسینیات این رنگ و میده خب کدام پس مقدم میشه؟ میگن اون که روتبش مقدمه یعنی ضروریاته نسبت به حاجیات و تحسینیات اگر بین یک حاجی با یک تحسینی تزاهم باشه کدام مقدمه اون که مربوط به حاجیاته؟ البته خود اینا هم مکملاتی دارن طبیعتا اون دسته سهوه هم نسبت به مکملات خودش رتبتا بالاتره خب بیریم مرحله بعد آقا اگه اینا مساوی بودن هر دو از یک رتبه بودن مثلا اگر در رتبه ضروریات بودن هر دو ضروری هن. اینجا کدام؟ میگه نگاه کنید بین این چهار تا کدامش مقدمه آیا حفظ مال مقدمه یا حفظ جان؟ خب حفظ جان مقدمه حفظ دین مقدمه یا حفظ جان مثلا حفظ دین و همینطور این میشه ترجیه اعلال مثلت نوعن خب اگر هر دو در یه رتبه بودن دوتاش حفظ جان بود دوتاش حفظ مال بود دوتاش حفظ دین بود میگه نگاه کن ببین کدام مثلت اعمه میرسیم به ذابطه چهارم ترجیح اعم این نگاه کن مثلا الان داری در یه در یه جایی رانندگی میکنه ترمز می‌بوره البته این مورد بعد میشه تظاوم این مفاصل نگاه کن ببین سودش به کی بیشتر میرسه اگر به پنج نفر شما خدمت رسانی می‌کنیم یا به یک نفر این اعم دیگه دارش وسیع‌تره به پنج نفر شما دارید مسلحت رو میرسید پس ترجیح اعمال مسلحت خب اگه هر دو به یک میزان مسلحت داشتن به یک دایره وجودی میرون رتبه بعدی میگه ببین کدام یکی از مسلحت قدرش میزانش بیشتره اکبر ترجیح اکبر مسلحت قدرن اندازش کدام بیشتره هر دو مثلا از رتبه ویشتر ضروریات حکم بود واجب بودن بعد هر دو یک رتبه بودن اگر رتبه یکی با که اون, اون رو میگیریم اما اگر هر دو مولین یک رتبه بودن نگاه میکنیم ببینیم نوع کدامش قلوسه به اهمیتش بیشتره اگه مساوی بودن نگاه میکنیم ببین کدامش دایره وسیع تری رو میگیره اگه هر دو, دو... یک دایره داشتن به پنج نفر مثلت میرسونم به پنج نفر ببین کدامش مثلت بیشتری داره اگه هر دو به یک اندازه بودن مثلت ببین کدامش دوام بیشتری داره ترجیح عد و مول مثلت های نفعن ببین دوام کدام بیشتره اگر هر دو مساوی بودن از جهت زمانی ببین اینجا این تعبیر اشتباست آکدل مسلحت تحققن این کدامش محکده مسلحت محکده خب اگر مسلحت محکده از جهت اتمین از این به چه معنا؟ به این معنا که احتمال میدید این خلاصه احتمال بیشتر میدید که محقق بشه ترجیه آکدول این تحققن ممکنه یکی احتمال تحققش کمتر باشه خب من یه مثالی بزنم اینجا ببینید شما به کدام میخورم شما مثلا در تابستان ماشین گرامی رو میبرید بیرون میخواد یه جا پارک کنید دو سه جا پیدا میکنید یکیش خب الان یه جایی الان مثلا زیر آفتاب قرار میگیره یک جایی هم هست الان سایه است. ولی بعد از ظهر شما چون که میخواد اینجا ماشین رو خیلی نگه دارید این حرکت میکنه می بعد از زور تو سایه قرار میگیره کدامش ترجیح داره برای شما الان هوا خیلی گرمی زیر آفتاب قرار بگیره اشکال نداره برای شما که الان نمیخواد ماشین سوارشید میخواد پنج شیست جا پار کنید کتاب خانه مطالعه کنید برید مدرسه مباحثه کنید درس بخانید میگید من بعد از زور برمیگردم پس اگر بعد از زور توی سایه قرار بگیره بهتره الان بحث گرمی و سردی و خنکی بود خب شما به هر حال معیارهای مختلفی رو در نظر میگیرید میگی چه زمانی اون زمانی که با شما تناسب داشته این پس بعضی مثال ها پیچیدگی داره به این راحتی نیست حتی الان این چند تا معیار رو که ما اینجا در نظر گرفتیم گاهی به این راحتی هم ممکنه نشه پیادش کنیم بفرمایید خب در این مورد به هر حال نگاه کنیم مثلا در صبح اصل فرما شما رو من قبول دارم میارها به کجا برمیگرده یه مقداری رو مراتب قبلی بیشتر میخوره که ببینیم رتبش متفاوته نوع کدام متفاوته دو تا معیار داریم یکی این که مثلا به رنگ آسیب بزنه یا این که موقعی که شما میخوایید درگردید خونکتر باشه پس شما نگاه کنید بعد برگردید ببینید این نوع مسلحته چه نوع مسلحتیه یکیش میبینید مثلا رتبش دو تا مسلحته جور جوره بعد این دوتا مقایسه میکنید بعد بگید که آیا حکمشون با هم یکیه یا نه طبق این الگوها آیا رتبه این دوتا یکیه یا نه دوتایه اگر یکیش مثلا جزء رتبه ضروریات یکیش جز تحسینیاته خب اونی که رتبهش بالاتره بعد میهن سراغ نوعش این فرمایش شما خب توی هر دو توی یه رتبه ممکنه حالتای نوعی ای که اینجا میگیم یه ذرا ممکنه با اون نوعی که شما میگید متفاوت باشه ولی میتوانه با هم باشه توی یک رتبه اگه باشن هر دو ضروری باشن مثلا حفظ رنگ ضروری باشه حفظ خونکی هم مثلا ضروری باشه بر فرض باشن ضروری باشه یعنی مثلا اون گرماهی که بعد از آره ممکنه برای شما تحمل, آفرین نه. تحمل قابل تحمل نباشه رتبه اینا هر دو در حد ضروری باشه ولی بعد میگید که نوعش چی باشه؟ این نو طبقه الگوی آقای دکتر عبدالمجید از سوسوه اینجاست میگه مقایست کن ببین کدامش اهمیت کدام نو بیشتره این یه نوع به قول شما ضرورتی ممکن داشته باشه اون یکی یه نوع دیگه یا هر دو حاجی هن هر دو مثلا مورد نیاز هن. ضروری نیستن هم حاجی هن. مثلا حالا رنگ حفظ بشه نفس چه مثلا خیلی تاثیر نداره اما این الان یه نوعه یکی حفظ خونکی یه نوع دیگه است هر دو یا ضرورین یا مثلا هاجان فرض بگیریم اگر مساوی بودن از جهت نوع یک نوع بودن پس اگر نوع تفاوت داره تقو الگویشون مربوط به سومه اگر هر دو مساوی بودن میره به بعدی اگر دوره تو بعدی خب پس الان اینجا الگوی که ما داریم رفع اعتظام به بین دو تا مسلحه الگوی که تو فضای شیعی هست یه مدارره اون قسمت اول رو که ترجیح دو مسلح حکمیه اونجا برجسته شده یه نکته اساسی نقدی که هست اینه که خود اینها گاهی ممکنه اینجوری نیست که حکم رو از اون پنج شیشتای بعدی کاملا جدا کنیم ممکنه با اونها قابل جمع باشه خب حالا نختهای دیگه هم هست فعلا کار نداریم همین الگو رو برای تضاهم بین دو تا مقصده میبریم پس در علم این تبیر در هم خاطرتون باشه در و اعلل یه نکته ارز کنم قبلش وقتی که ما این سگانه تزاهم بین مسائل و مساله تزاهم بین مساله و مفاسد و تزاهم بین مساله و مفاسد رو مطرح می کنیم، بعضی نویسند ببینیدی در کتب قواعد اولا کتب قواعد فقی، فقی، قواعد اصول کار نداریم قواعد قدیم خیلی قدیم‌تر. اولا سنی‌ها به هر حال کتب تعدادشون زیادتره. علماشون هم بیشترن، نویسندگانشون هم طبیعتاً بیشترن، خیلی کتاب دارن. خب تو بحث قواعد، کتب قواعدم خب طبیعتاً سنی‌ها بیشتر دارن از ما چون که تعدادشون و تاریخشون و گستره جغرافیاییشون همه چیزش بیشتره و از همه اینا بالاتر یه مقداری اینا رو قبلا نعرض کردیم اینجا میکنم ازش استفاده کنیم این که این بندگان خدا نصوص معتبرشون کمتره خیلی سراغ زنون میرن و لذا نصوص که کمه مجبورن تحسیس قاعده بیشتر کنن خب کتاب های قدیمتر مع یا بحث‌های اشباح و نظر که یه جایی ممکن متفاوت از قواعد بشه یه جایی هم نزدیک بشه و هر عنوان دیگه که استفاده می‌کنه اینها قواعد رو با نظم و های مختلف و با بی نظمی های متفاوت معمولاً به نگارش درآورده هر کسی یه ذوقی داشته دیگه غفلاً در حال اون نظمی که الان انتظار هست و بعضی‌ها دنبال اون میرن نبودن این یه مقدمه مقدمه اینکه یه سری قوائدی ما داریم نازد به رفع تزاهومه تو کتاب های هم زیاد هست و زمیمه کنید به اون مقدمه قبلی خب اگر اون کتابشون بی باشه همینطور بی نظم رو میارن اگر بخوا نظم پیدا کنه و بعضی هم که دنبال نظم خواستره رفتن یه کار جالبی کردن قواعد مربوط به تضاحم رو یه مقدار اوردن زیرمجموعه این سگانه این خیلی قشنگ میکنه کار رو یه سری قواعد داریم مربوط به رفع تضاحم بین مساله و مساله یه دسته قواعد داریم ناظر به رفع تضاحم بین مفاسد و مفاسده یه سری قواعد مربوط به تضاحم بین مساله و مفاسده خب من الان یه تعبیر به کار می‌برم شما ببینید به کدام تناسب داره در او مقصصده اولا من جلب مسئوللهه؟ این به کدام یکی از این سه دسته میخوره؟ بوسان بفرماند. اووسان بیدار به چی می‌خوره؟ اصلا خب پس به این دسته سوم میخوره. در المقصده در المس مصده اولا من جلب المصلحه یا منفعت. هر کدوم از اینا یه چیزه. این یه قاعده. بله. بله. بل. خب پس جایگاهش مربوط به این سومیه. خب قاعده دیگه حالا تعبیر سادش بگیم این که چون هر کدام از اینا تعبیر متفاوتی براش ذکر میکنن یه موردم گفته میشه که یوتحمل مفسدت سغرا و در این طوره بگیم مفسده کچیکتر تحمل میشه نسبت به مسلحت مقصده بزرگتر این مربوط به کدام دست است؟ طبیعتاً دو طرفش مقصد است احسان تو خب حالا تعبیر خودمانی شیعیش چیه؟ دفع فاسد به دفع افسد به فاسد ما تو فضای شیعی معمولا این تعبیر رو به کار میبریم دفع افسد به فاسد پس اگر این رو یه قاعده بگیریم دفع افسد به فاسد مربوط به بین بینه دوتا مفسده است. اما در اول مفسده اولام جلب المسلحه یا منفعت مربوط به اون دسته بعدیه خب تعبیر اهم و مهم چی یوتقدم تا... صدا خیلی زعیف آقای نجفاودی این که دستون‌ها هستند نه فقط کلم دیوگرا و غیر دستگرا هستند بلکه فرقیه مغناش دستگرایی یعنی به نسل خیلی متمایز درست یعنی اینکه اول مثلا در زمان شریعتی اول چیزی به اسم قواد نداشتین با عمل کسی که شروع کرد به قواد فخو نوشتن بعد اول قبلا هم داشتیم محدودتر من اون جلسات اولیه اشاره کردم مثلا اون نصحت و نازر و کنسلام پس این جمله رو ارز کنم محدود تر بوده قبلا بلی بفرمی خب فواجه خود سفاوز دازه من ببخشید جسارتا خود متوجه نمیشم حواسم نبود ببخشید بلنگوه هنوز نذاشتم حواسم نبود تو من بلنگوه برس کنم حداقل این چند جمله رو تکرار بفرمیم ما از اون ابتدا قواعد فقه داشتیم تنوید از قواعد سختیه یه را که ما تمام کنم قواعد عسکو تیره حالا که این ها قوائد اقلائیم هستش و این اینها این ها بعدم مثلا قوائد فرقیم که این نیستش که هم نبودن یا نیستش که دوست از هستن حالا اگر این رو چون قبلا بحث کردیم پاسخ حضرت آلی درسته منطقه در مجموع نسبت به علمای اهل سنت کتب قواعد ما کمتر داشتیم این جمله درسته اما حالا اون یه بحث خارجیه فقط میخواستم مقدمه این بحث قرار بدم که مقدمه بعدیش این بود که کتاب هایی که نوشتن با نظم‌ها ها و بی های متفاوتی داریم یه سری از این جدیدی ها آمدن قواعد رو به بیجه قواعد مربوط به تضاهم رو یک کمی نظم بهتری دادن این مورد خب دو موردش رو ارز کردم یه نکته دیگه هم کنم یه قواعد اصلی همیشه ما داریم یه سر قواعد فرعی هم داریم خب اگر ما برگردیم به بحث این قواعد خدمتش رو کنم اینجا ما یه قواعده داریم به عنوان بحث مثلا دفع زرر خب، یه تعبیر گفته میشه آقا دفعه اکبرول مفزدتن طبیعتاً این دفعه اکبرول مفزدتن میاد جزء همینجا جز زوابت بین تضاهم پس این الگو رو شما اگه در نظر بگیرید ممکنه چند تا قاعده به طوان زیرمجموعه این بیارید حالا ایشان این بندهی خود آقای عبدالمجید سوسو و آمده اینا رو ضمن این تیترای هفت بکار به برده پس اگر ما بریم سراغ ضوابط رفع تضاد بین مساله هفت رتبه است اول ترجیح اعل المصلحتا حکمن دوم رتبتا سوم نوعا چهارم اعم عمول مثلتن پنجم اکبرون مثلتن قدرن بعدش عدوان بعدش آکد و تحققن یکیش احتمال تحققش بیشتره بعضیش یکیش کمتره خب در مورد تزاهمه بین مفاسدن باز همین رو تکرار کرده تا تیتراش دیگه فقط مقدره کلمه اولش عوض شده و وسطش مرتبه اول در او احلال مفسدتان حکمن پس اون قاعده در اول اولام جلب مفسده مال اینجا نیست مال اون دسته بعدیه پس کلمه در رو دیدی زود نیارید اون قاعده رو اینجا اون مال دسته ثومه ولی اون ترتیب اینجا هم هست در او احلال مفسدتان حکمن هر کدام حکمش بالاتر باشه یعنی یکی حرام یکی حرامتر میگه آقا حرامتر رو مقدم کن م... بعدش اگر اونجا مساوی بودن دوتا حرام بودن دوتا مفسده مساوی بودن عزیت حکمی میاین نگاه بکنیم رتبهش کدامه رتبه یعنی چی؟ یعنی کدام ضروریه کدام حاجیه کدام تحسینی اونایی که ضروریه مقدمه بر حاجیات حاجیات مقدمه بر تحسینیات اگر هر دو ضروری بودن اگر هر دو حاجی بودن اگر هر دو تحسینی بودن نوبت به چی میرسه میگه نوعش رو ببین ببین نوع کدامش اهمیت بیشتری داره مقصدش بیشتره علل مقصدتن نوعن هر دو مثلا مربوط به جانن میگه که آقا مثلا این میزن آدم میکشه اونم آدم میکشه ولی ببین نوعش خب دیدیم مصابیه اگر یکیش حفظ دین بود یکیش حفظ جان بود حفظ مال بود اینا یکیش نگاه بکن اون میشه رتبه ولی اگه هر دو حفظ دین بودن هر دو مربوط به حفظ جانن ببین کدامش نوع اعمه خب یه مثال فقه سیاسی الان یه بحثی ما داریم به اسم تطرس تطرس چیه؟ این که دشمن بیا یه تعداد از مسلمانان رو اسیر کنه بعد بیار به عنوان سپر قرار بده که اگر شما بخواید دشمن رو بکشید بعد اول اونها کشته بشید هم در فضای شیعه هم در فضای سنی این جمله پذیرفته شده است خب منطقه باید شما چه کار کنید مثلا فرض کنید شما دشمن شما یه نفر دارید با اون بر می جنگید پنج نفر رو دشمن از شما اسیر گرفته یا باید دشمن رو بکشه یا شما یه نفر کشته بشید خب کدام امل مقصد تاینه اگه اون پنج نفر کشته بشه اگه شما پنج نفر باشید یه نفر رو دشمن اسیر گرفته سپر کرده خب دیگه شما حفظ جانش شما پنج نفر فرض بگیریم واقعا بزنه بکشه خیر موقعیت اینجوری نیستا شما می اون رو میکشید میکشی هم میزنه مسلمان مسلمانو بیچاره میکشید اونم میزنه شما رو میکشه حالا اون من شناسیش کار نداریم میخوام به عرض کنم که هر دو یک نوع بود حفظ جان بود اما اگر یکی جان بود یکی مال این میشه مرتبه قبلی یکیش اهمیتش بیشتر بود حفظ جان مقدم بر حفظ مال دیگه شما رتبه بعدی نمیایید اگر دو تا مال بود میخواید حفظش کنید. اگر هر دو مساوی بود از جهت تعداد انسانی، امل مفسدتان نبود، مساوی بودند. نگاه می‌کنید مثلا میگه آقا حفظ یه میلیارد یا حفظ ده میلیارد. خب یه مثال بعد اگر بگیم آقا شما مخیرت بین اینکه یه میلیارد بگیرید و اینکه مثلا فلان جنر رو مرتکب بشید این کدام اکبرول مفسدتن قدرنه اعمول مفسدتن قدرنه یا نه اصلا تظامه بین مسلحت و مفسده است حالا فرض کنیم با تظامه اگر اون یه میلیارد رو ما منفعت رو مسلحت حساب کنیم طبیعتا اون میره تو دست بندی بعدی این رو من اینجا اشاره کنم الان در ظاهرین ساده است ولی بارها من با دوستان طلابه کلاس های مختلف اینا رو اینجا فقط حالا خدمت بزرگ. شما بزرگ شاید به تفصیل دیگه نشه همین چندین جلسه شاید ما بحث میکردیم به ویژه اگر خواستید رساله عملی بنویسید از این الگو حتما استفاده کنید اگر اجازه بدید من این رو قطع کنم اگر بزرگ بران فرماش دارن من این جلسه رو خط کنم ادامه بحث رو در یک دو سریقه دیگه اگر فرمانشی دارید استاد کن رب